ما توفیقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فننتبه انك على كل شيء قدير خب کسی باید از سفر حج سخن بگه که از سفر هر چیزی فهمیده باشه حالا ما توفیق تشرفو چند سفر داشتیم الحمدلله اما هر حال نوست که مقدس شد حالا یه گفتگوی داشته باشیم ببینیم به کجا می‌رسه. در زمینه این سفر بسیار واقعا استثنایی در طول زندگی انسان چونهایی که مشرف شدن خودشون غذاوت میکنن اونهایی هم که مشرف نشدن انشاءالله در تشرف در خواهن یا اصلا عجیب سفر حج من حتی افرادی که واقعا چه جنبه های مذهبی قوی هم نداشتن جهت جهتی شده که بیاد مکه مثلا پدر مخواسته مشرفت بشه نمیتونسته پسر رو مثلا جای خودش برستاده یا که افرادی من دیدم تو سفرهای حج که گفته خیلی خوب حالا که پدر نمیتونه ما میریم اما اونجا یک احساس دیگه داشه برداشت دیگه داشه یک حالت خاصی که یکی از اینها رو در یکی از این سفرها که ما موفق بودیم ایشون به گونه اونجا منقلب شد و برگشت که اصلا زندگی خانوادگیش هم عوض شد یعنی خودش خیلی معتقدات چیزی نداشت اما از مقوله افرادی بود که به جای پدرش اومده بود ولی از همونجا تصمیم گرفت که من خواهم تغییر کرد و تغییرم که اکانوادشم که من هنوزم شاهدم مال شون ده سال قبل که این آقا رو تو من کلید سفر عجیبیست و هر حال یک معنویتی یک تحولی انشاءالله در اومو ایجاد میکنم. در رابطه با این سفر به طور کلی شاید از چهار دید بشه بحث کرد که برخی از این دیدها رو من فیلن کاهی ندارد. بنابرای جهتی که ارز میکنم. یک دو جهتش رو که یه جهتش هم یه مختصری اشاره میکنم جهت دیگر رو یه مقدار بیشتر انشاءالله بحث یک از نظر تاریخی مکه و مدینه چه تاریخی داره؟ چه مراحل رو خوش سر گذاشته؟ و به خصوص برای ماها به عنوان شیعه که وارد مکه و مدینه میشیم چه ثبابه تاریخی برامون مفره؟ یک جنبه جغرافیایی داره مکه و مدینه یک جنبه مناسکی داره که از نظر وظیفه شرعی چی کار باید کرد؟ از مرحله اول ما چیونه آغاز میکنیم تا مرحله آخر یک جنبه اخلاقی و اون دریافتهای معنوی جنبه مناسک حج رو خوشبختانه هم میدونم جلسه داشتید و و هم انشالله جلساتی باز خواهید داشت و خودتون هم که مناسک قطعا تهیه بر مدید مطالعه میکنید انشالله در خود مدینه همچون مدینه قبل انشالله هستیم توچی قنایت کنن فرصتی هست اونجا هم باز مطالعه میشه رضا جنبه مناسی که رو ما اینجا بحث ندارم جنبه جغرافیاییش هم خیلی باز مورد نظر نیست جنبه تاریخیش رو من یه مختصری اشاره میکنم جنبه بعدی جنبه اخلاقی و معنوی اون هم به دو جهت من به خودم جرعت میدم بگم یکی از این جهت که به لقمان گفتن ادب از کام مختصری باز بیعدبان حالا میشه از دیگران که همچون معنویت ندارن آدم چیزی چی ولی قسمت دوم که من جرعت میده بیان از روایات از خودم نیست اگر نه من این جرعت رو نداشتم روایات عصومین علیه السلام به خصوص از امام سجاد که ما قضیه ی در را را حج داریم که خیلی عالی و زیبا همونوی مزدار انشاءالله بشکافیم جنباهای زیبای اخلاقی و معنوی حج رو بیان می‌کنه که من به خودم نسید یک در قصود اجازه بدم زفت صورت و عشقی باشن که این مسئله از روایات با هم در میان بسید جمعه تاریخی خواب از مکه بکن شروع کنیم اون مقداری که باز در روایات ما اشاره شده و ظاهرن میشه تکیه بشتر دیگن زمین آب بوده، از وین قسمتی که از آب خارج شد و جنبه خشکی پیدا کرد خود مسجد الحرام و کعبه بود و از اون مکانی که از آن کعبه در او قرار گرفته از اینجا کم کم خشکی سرایت کرده به جه دیگه این نخستین نکته خشکی زمین خدا در این ای که ما در قرار داریم اون قسمت کعبه بوده که بعد کم کم به جای دیگه سرایت کرد و نخستین انسان از آدم عبود و علیه السلام که به زمین حبود کردن در عرفات بوده که انشاءالله عرفات روید عرف خدا انایت خونه در کاریم کرد به عرفات رسیدن چلا یک وجه تسمیه عرفات نه هم مثلی گفتن آدم عبالبشر در منطقه عرفات که چند کلومتری خود مسجد حرام و مکه هست حبود داشتن از اونجا به طرف همین مکان میان و نخستین سنگ بنای خانه خدا یا مکانی که اقتصاد پیدا کنه در ارتباط خدا، همین مکانه که عزت آدم و عبود بشه هست چند تا سنگی اونجا قرار دادن نه این فلاسان ساختمون ساختن و خلان و اینها به خدای همون زمان این نخست، این پایگاه عبادت و پرستش همین که است البته در روایات داریم که معادل و بیت المهموره که در پرش الهی قرار درده و غیره بود این هم حالا که خیلی مطلح نیست از زمان حضرت آدم عبول بشهر تا زمان حضرت ابراهیم خب بره گذشته اون منطقه منطقه خیلی آباد نبوده که بگیم سکنای داشته باشند و زندگی باشند اینها نه تا جریان حضرت اسماعیل پیش اومد و حاجر که خداوند وقتی به حاجر اولا داد حضرت اسماعیل به دنیا آمد حالا به جهتی که از ابراهیم خواستن که هاگر اونجا نباشه حضرت ابراهیم به امر خدا بنا و درکت کنه به هر جایی که خدا ایجاب کرد که اونجا دست دور سوق قفرش داده شد اونجا بیسته ابراهیم هم تسلیم دیگه مسلمانه در قرآن کریم انبیای گذشته رو که مسلمان نامیده هن در میان انبیای گذشته ابراهیم ها به که مسلمان هم تسلیمه خدا میدون کارو بخود حالا خامنش، پسرش، دوران عمری ازش گذشته که بچه دار شده خب این توی بیامون قرحوت خوشت کار بکنه آبادی هم اون صورت نداشته و سی کنار کعبه بچه اونجا با همسرش قرار داد خودش هم بود برگش خب به امر خدا خودش اومد حاجر تسلیمه خب حالا من تازه بچه دار شده من آبادی اونجا داره حامل کنیم میری تکلیف من چی بنا اگه سلام میدونی کش مام چیزی نمیدونی یکی از جنبه هایی که انبیا در نسل حضرت اسماعیل در اسلام قرار گرفتن که من جمله برجست ترین انبیا که پیغمبر اسلام باشه که پیغمبر اسلام از نسل حضرت اسماعیل هستند شاید البته اشارات روایی هم داریم خود مقام از اسماعیل و و چنان تسلیم مادر و دعا در حق فرزند که تاثیراتی داره اینا بی شاید نباشه کلا اشاراتش برحال تسلیم از تقوا گفت اینجا نمودم چقدر منده بچا رو و رو بیابون و خشک و برهوت و آبادی هم چیزی نیست و یه مدتی بود بچه ویتامین می‌کنه مادر ویتامین میکنه مادر به سراغ آبی گش برای بچه‌ها اومد این طرف‌تر اون طرف‌تر تقیه صف اول مروه که بعد ان شاءالله خواهید فرمود تپه مختصری است نه این که حالا کوه خیلی با واهمعنا اون باشه اونجا رسید اون سراب در اثر تابش آفتاب آب به نظر میامید دوید این طرف که این آب دید نه نیست اون طرف این دویدن و غیره دیگه معیوب شد و خسته بیاد کنار بچیش دید که بچه در این با پاک زده بود به زمین در اثر آتش و خستگی زمین جوشید و آب اومده بود بالا که زمزم آب بمان که آب زمزم معروف شده. خب شد و آبی شده آبادی شد کم کم قافله ها اومدن از اونجا رد بشن، دیدن پرنده اونجا آبور میکنه، فهمیدن باید آبی باشه اومدند و خلاص آباد شد اون منطقه. ازدت اسمایل در اونجا موند که الان مدفن اسماعیل و هاجر هم تو هجر اسمایل که اشاره برد از خواهم کرد. زمینه آبادی تقریبا بعد از این قضیه یزدت اسماعیل و جناب هاجر شده و دیگه نسل، اجداد پیغمبر که از اعراب حجازی حساب میشن از نسل اسماعیل در اون زمان اونجا ساکن شدن تا اینکه خداوند بعد دستور داد به حضرت ابراهیم که برو در اون مکان کعبر رو بنابزا یعنی بیت رو در اونجا بساز که ابراهیم آمد و با به کمک همین پسر اسماعیل که در واقع پدر و پسر برنایی میکردن کعبر ساختن و بالا آوردن و از اون زمان که کعبه ساخته شد به عنوان خانه خدا که محل عبادت بود منتهیاد در طول تاریخ عوامل گوناگونی دخالت میکرد که گای بتخانه میشد که اونها از ابتدا اونجا به عنوان بت ساخته نشده حضرت آدم سنگی گذاشته بود بعد از ابراهیم و قزایای اسماعیل و این به این کیفیت منطا تحول تاریخی رو طی کرده مسائل پیش این تاریخچه مختصر از اون زمان هم میاد همین جور انبیا دیگه که بودن اونجا مثلا در هجره اسماعیل داریم حدود 70 پیغمبر داشتند حالا انبیا مختلفی چون منطقه منطقه مورد توجه بوده بیشترین جنبه تاریخی مکه در رابطه با ما از زمان پیغمبر شروع میشه از زمان پیغمبر هم نه به سطح پیغمبر، از ولادت پیغمبر و از زندگی اجداد پیغمبر حالت خاصی داشت خب عبدالمطلب که سرفرست خود پیغمبره و جد پیغمبر بعد از او ابوطالب طالب که با سرپرست پیغمبر و عموی پیغمبر پدر امیرالمومنینه اینا بزرگ مکه بودن کلیددار کعبه بودن بعضی ها اشکال میکنن اگر کلیددار کعبه عبدالمطلب و ابو طالب بوده چرا کعبه قرر بت بوده خود قرائن تاریخی که مفصل نشون میده اینها بت رو قبول نداشتن شرایط عمومی جح و محیط و بیفرهنگی و شرک مردم به حدی بوده که اینها نمیتونستان در مقابل اونها قاطع عمل کنن که وقتی پیغمبر اسلام بناشد بت‌ها رو بکوبن اون همه مشکلات پیش اومد که هجرت شد و تبعید شد و غیره که عنایت داریم. به حال در اون زمان کلیددار بودن ولی بت نبودن اون جنبه طولیت کعبه مال اونها بوده و یک غرینه و شاهد نسبت به این مسئله که شنیدنش برای ما محسن شیعه خالی از اونش حالا عجر نیست و جداری درز میکنم وقتی جناب فاطمه بن تحصد مادر امیرالمومنین که حامله بود و امیرالمومنین المؤمنین اومد کنار کعبه شاهد بودن که از خدای یکتا درخواست کمک میکن که این درخواست کمک از خدای یکتا ولی بعضی و تاریخ داریم که دشوار بود که اینا چرا از بطفای ما کمک نمیکن. که دیوار کعبه شکافته شد و مسئله ورود مادر امیر به کعبه که بعد مسئله مستجار رو ارقاهم کرد انشاءالله مختصری این کیفیت تو کعبه بود خود پیغمبر در مکه خود مراحل پودکیشو گذارنده نوجوانیشو گذارنده بلکه قسمت عمده پیغمبر از 63 سال زندگی 53 سال رو در مکه بودن 40 سال قبل از بهصد 13 سال بعد از بهصد قبل از هجرم ده سال آخر آقام رو هم که بعد تجرت در مدینه تشوشتن خود امیر در دوران قبل از بهست پیغمبر که با تمام وجود با پیغمبر بودن در مکه در خانه پیغمبر مثلا خاندان پیغمبر مسئله اعتکاف و راز و نیاز رو داشتن که جناب ابو طالب پدر امیر المؤمنین اموی پیغمبر ساله ها ماه رمضان رو در همین غار حرا مقتکف می شدن با اونجا راز و نیاز داشتن منطقه مال پیغمبر جنبه خاصی داره که بیشتر تو زبان مونده و جناب ابوطالب هم کرارا تو غاره هرای داشته منطقه پیغمبر تون جنبه خاصی داره تنها محرم راز پیغمبر که در این وقایه می تونست در حرا هم همراه باشه همین رولون علیه بوده که می رفتن قضا می بردن و برمیگشتن گشتن پیش خدیجه و پیام می آوردن پیام می بردن چون محرم و رازدار پیغمبر بودن اینجا درفیت هست اینو ارز بکنم بعدی جهادم در عفت نمی کنه متهم میشه. اونها حساب دیگری دارن ما داریم تو روایات ما وقتی که فاطمه و انتحصد وارد کعبه شد و دیوار به هم آمد سر و صدا شد که فاطمه و انتحصد وارد کعبه شده درم قفل باز نمیشه دیوارم که به هم اومده خب طبیعیست به محیط کچی که مثل مکه صدا میپیچه و جمعیت اومد و مدتی هم طول کشیده قضیه تا که لحظه معین دوباره دیوار باز شد و فاطمه خارج شد غنداغه امیر تو بغلش غنداغه را داد بغل عبو طالب پدرش چشم بسته بود چشم کودک نگاهی که چشم کودک بسته داد بغل پیغم تا تو بغل پیغمبر افتاد رو باز کرد نگاه به چهره پیغمبر کرد با صدای بسیار حسیح و بلیغ عرض کرد یا رسول الله از قرآن بخونم پیغمبر فرمود ساکت اونا حسابشون حساب دیگری است اینجاست که در میشه گفت ولی خب بعضی جاها ظرفیتی عرفانی نیست هیچ استدام آدم نداره حضرت ایسا که تو گهواره سخن بگه به نسب صریح قرآن حالا من زمان ابتدای بلادتش به سجده میافته ذکر خدا بگه یا امیرالمومنین المون هست؟ نداره. جای خودش استدلال عبری هم میشه براش ذکر کرد که ثابت که. هر حال اونا حساب دیگه ای داشتن. اما تو تاریخ مکه مسئله قاره حراب و رفتن پیغمبر و امیر همراهیشون یه جنبه خاص تا جنبه بعد از بهست پیغمبر که جنبه مکه یه جور دیگه میشه. حالتی که بعد از بهست ما تو مکه میتونیم توجه کنیم یکی در ریست که میگن شعب عبی طالب به این جهت کال ارز میکنم الان داخل مکه است ثابتا این در خارج مکه بوده وقتی فشار کفار قریش به پیغمبر زیاد شد بنا شد که حضرت و یارانش توی این در ری محاصره بشن عبو طالب با تمام وجود در این در ری حمایت میکرد از پیغمبر و یارانشون به حدی که شبه ها بچه های خودش رو به نوبت بالا سر پیغمبر بیدار داشت که این رو علمای اهل سنت هم نوشتن. به نوبت قسمتی از شب رو یک پسرش قسمتی از شب یک پسر دیگر که مواظب پیغمبر بشه دشمن کمین نکنه تا اینکه سه سال در شبهه بیت طالب تو محاصره بوده مشکلات بسیاری در این سه سال بوده که من حتی دیدم در تاریخ یه دونه خرما رو گاهی دست به دست می‌گردوندند که در اثر گرسنگی فشار به اونها نیاد تا این که این سه سال محاصرهش از محاصره‌ای که میان بیرون هم جناب ابو طالب در مدت کوتاهی در مکه دنیا را هم جناب خدیجه که هر دو رو در همون شب عبی طالب دفن کردند که الان البته میدونید که سعودیا حساسیتی که روی مسائل قبر و زیارت اموات اینها دارن و اون کیفیت مثلا قبرستان و زیارت نیست که ولی میتونه شه یا میرن هم پلی که قول هوایی اونجا زدن که از کنار شب میگذره اون بالا مسلطه میتونن هم کنار دیوار میتونن واسن معمولا به قصد کاملا مشخص نیست قبل ولی به قصد جناب خدیجه که واقعا فداکار حقیقی پیغمبر بود و خودشو فدای پیغمبر کرد و هم جناب ابو طالب که حامی واقعی پیغمبر بود که یه اشاره من اینجا بکنم وقتی که حضرت زهره سلام و للیه خود به یه فدک رو خوندن تو مسجد النبی که قضیهش رو همه می دونید برگشتن در تاریخ داره که تو نحجب الاغم هست خطاب به امیر المؤمنین یبن عبی رو فرمودن یا عرض کردن به امیر با این که با غراهنی که مادری مدرز زهره امیر المؤمنین رو اینجوری صدا نمی زدن عنوان امامشون امیر المؤمنین نه عم این که با یک خاصی اونجا شارحین معمولا توضیح میدن، مثلا این گونه منعکس کنن که شما پسر اون کسی هستی که پدرت با تمام وجود از پدر من حمایت می‌کرد، ابن یعنی ابی طالب، تو ابی طالب بود که با تمام وجود از پیغمبر حمایت میکرد من الان دختر اون پیغمبرم که حضرتین استفهام انکاریست برای جواب امیرالمومنین معلوم بشه که بقیه بدونن چرا امیرالمومنین ساکت و از زهرا دارن اونجا خطبه میکنن ولی منظورم تو این ابن یعنی ابی طالب بشه. و ابو طالب با تمام وجود لذایی تکیه تاریخی برای ما در مکه مسئله دفن ابو طالب در اونجا و جناب خدیجه کبراه در عبرستان شعب عبی طالب البته اطراف مکه مثل مسئله قاره حرا و یا قاره سر و یا غیره خب حالا اینا خیلی جنبه خاصی نیست که بخوایم حالا وقتش بذاریم همین جهات قاره را که پیغمبر در اون راز نیاز می کردن اینشالله اونجا هم میرید و می قار صور که مقدار بیرون مکه از پیغمبر موقع هجرت اون شب در اون قار بودن که اونطا را انکبود مجله و قار و غیره و اینا جنبهای تاریخی مکه و خود مسجد الحرام که از نظر تاریخی یا جغرافیایی قابل توجهی بشه که کعبه رو یک چهار دیواری بعنوان خانه خدا در نظر بگیرید دو نکته اینجا خیلی در خور توجهی که بیشتر یکی هجرت اسماعیلی هجر اسماییل که یک نیم دایر مانندی این قسمت هست که در که به اینجا باشه این, این قسمت واقع شده که نابدون هم به اینجا سرا زیره معمولا میگن زیر نابدون تلا برای ما نماز بخونه تیار میتونم به جهت تلا بودن نابدونه این نابدون به جهت اینکه جایی واقع شده که این هجر اسماییل هفتاد قیقنبر دفنه خود حاجر و اسماییل اینجا دفنه مکان استجابت دعاست ازا اونجا نماز کندن اونجا دعا کردن خیلی سلاس فارش شده منطقی یه نقطه بسیار جالب که در اینجا با توجه بشه اینه شما وقتی بناس خانه خدا رو تواف کنید اگر از این وسط بین این نیم دایره هجر و کعبه تواف کنید توافتون باطنه حجتون درست نیست باید هجر رو هم داخل کعبه یعنی چی؟ یعنی این پیغمبر اسماعیل و حاجر اونقدر در دستگاه خدا محترمان که اگه اونا رو جزء حریم کعبه قرار دادی سنی هم اینو قبول داره وهابی هم اینو قبول داره اگه ما بگیم اهل بیت پیغمبر و پیغمبر از خدا جدا نیستن اگه میگیم علی خدا نیست ولی از خدا جدا نیست منهای او به خدا نمیتونیم برسیم ما کفر گفتیم یا ما مشرکیم میگه هجر اسماعیل باید بیای تو طواف چه تاریخیش چیه اونجا مکانه متفنن روزگار نیست در راه خدا همه چی دادن این یک نکته در خور توجهه این قسمت که اینجا در این که وارد میشیم اون شکافی که الان هم داره تو معمولا در ایام حج پرده رو کم کم میکشن بالا همه انشالله میبینیم عمره باشه و مشرف بشیم توفیق باشه خواهیم دید هنوز اون تیکه رو با بر کردن خب در طول تاریخ اونها عوض شده اینم از کرامات امیرالمؤمنین که خدا مخاطب نگه‌دار اینم اون جنبه ای تاریخیه که اینجا مستجار میگن، شکافته شدن و خروج مادر همیر که برای اثبات حقیقت همیر اگر هیچ دلیل دیگه ما نداشته باشیم همین کافیه وقتی جناب مریم که حضرت ایسا را حامله هستند، ایسا هم در قرآن بیان شده که هستند ولادتش ولادت غیر عادی بوده، میاد کنار معبد که خدا یا درد زایمان را به من راحت کن، آسان کن، نداء میاد که مریم خارج شو اینجا عبادتگاه زایشگاه نیست ولی جناب فاطمه بنت ترثی که میاد و نداء میاد که داخل شو با اینکه اینجا کعبه هم هست با این غذا. این جنبه تاریخی هم در مکه در قر توجه این از کردم خوام اشاره کنم سریع بگذارم که بحث بعدی رو برسیم اما در مدینه جنبه تاریخی شون خیلی خلاصه عرض بکنم مدینه قبل از ورود پیغمبر یثرب نامیده میشد مکه کوهستانش سنگی از ریگزاره یک حالت خشکی و خشنی طبیعت داره مدینه یه مقداری حالت مزرعی و چه آبی و چه تا نخل خرمایی و یه مقدار دشت بودن و حالت ملاتفت بیشتری داره مردم مدینه پذیرشون بیشتر از مردم مکه بود برخوردشون با پیغمبرم نشون داد. لذا بعد از هجرت وقتی پیغمبر مکه رو فتح کردن باز مکه نموندن برگشتن مدینه مدفن خودشون هم مدینه قرار دادن یا حساب پیغمبر محسومه مکرم دوست داشتن ولی نماندن در مکه اون سختگیری هایی که مردم مکه داشتن مردم مدینه نداشتن وزا قبل لذیه هجرت پیغمبر به فاصله سه سال کرارن سال یازده هم،, هم و 13 هم هی از مدینه گروه گروه میرفتن با پیغمبر در مکه بیعت میکردن پیغمبرم قبل از اینکه که خودشون به مدینه اولین بار نمایندهی که پرستادن جناب مسعب ابن امیر بود که انشاءالله قبرشو در قبرستان احود کنار قبر حضرت حمزه زیارت میکنیم مسعب ابن امیر جوان 23 یا 24 ساله که توی احود شهید شده جنگ احود بعد از هجرته قبل از هجرت مسعب ابن امیر اومده مدینه نشون میتسمش چقدر باید باشه اولین نماز جماعتی که در مدینه خونده شده مسأله نومه خونده که جوان بسیار شایسته‌ای بوده خدمتگزار به پیغمبر اسلام پیغمبرشون فرستادن در مدینه مردم رو تبلیغ کردن می با مسجد بیعت می‌کردن به عنوان نماینده پیغمبر تا اینکه پیغمبر خودشون تش باوردن مدینه بعد از ورود پیغمبر به مدینه اسم یسرب رو عوض کردن مدینتون نبی شهر نبی لذا اسم مدینه در اونجا موند های تاریخی که ما باش کار داریم یه اشاره فقط بکنم یک مسجد قباء چون پیغمبر اولین مکانی که تو مدینه وارد شدن قبلا بیرون شهر بوده الان وسط داخل خود مدینه شده که میریم زیارتش میکنیم یه نکته جالبی هم اینجا داره البته این چند سال من مشرف نشدم میگن ساختمان مسجد غبا رو عوض کردن تجدید بنا شده نمیدونم این نوشته هست یا نه بالای محراب مسجد قباء که پیغمبر فرموده کسی دو نماز در اینجا بخونه معادله نمیدونم چقدر رکعت نمازه این خودش یه جواب برای وحابی که میگن شما مکان رو مقدس میدونید یا ذریع و مثلا احترام میگذارید این ذریع که چوبه این مکان هم که خاکه مکان مسجد غبا خاکه مکان خونه من هم خاکه خود اونا هم نوشتن بله پیغمبر گفته اینجا در نماز معادل چقدر رکت جای دیگه است پس این مکان فرق کرده چرا فرق کرده به جهت اون ارزشی که پیغمبر قائل شده، خواهی چوب هم فرق کرده. به جهت اینکه در ارتباط با قبر جت خداست، معصومه، امامه حالا پیغمبر وقتی وارد قباش شدن، اول مدینه بود دیگه. اون زمان بیرون شهر، حالا داخلش ده. جمعیت هجوم آوردن استقبال، یا رسول الله بفرمایید. هر متولی ابن بی تعالی از مکه وارد مدینه نمیشه. سه روز پیغمبر تو قبا موندن. حالا این در پیغمبر خداست، معصومه، جت خداست. حساب عاطفه ایشد میخواد این مردم مدینه بفهمه همین علی که 25 سال تو این مدینه باید زانوی غم غمو در بغل بگیره و بگه استخان در گلو و خار در چشم داشتم و به اون شکلی که در تاریخ اومده بلال حبشی میگه بعد از صریفه و خانه‌نشینی از تاهمیر من یه از نگفتم این مقدار که میتونم مبارزه کنم یعزان نمیگم مبارزه منفی اذیتش میکردن از مدینه خارج شد توی یک می هشام خاط دیدم پیغمبر خدا رو فرمود که نمیری سری بچهای من بزن صبح که بیدار شدم اونغرب شدم پاشم اومدم به طرف مدینه از دروازه مدینه همه گفتن بلال اومده دنبالش اومدن اومدن تا اومد صاف رسد کنه امیرالمومنین وقتی وارد خانشون اوزا رو اوزار جوری دیگه دید میگه تا چشمان به امیرالمومنین افتاد فرمود بلال دیدی که فاطمه من از من گرفتن و دیدم ازت تو خونه نشسته این پیغمبر سه روز بیرون مدینه توی قبا میمونن تا علی نیاد وارد مدینه نمیشن. کمایی که فردای قیامت هم داریم روایت رو مفصل نقل کردن سند داره دقیق هم هست. وقتی منبری از نور در قیامت برفامیشه، میشه پیغمبر اسلام بالای منبر ملائک از طرف خدا میان یا رسول الله کلید بهشت کلید دوزخ. هر کیا میخوای بری بهشت ببری بهش، که میخوای برای دوزخ، پیغمبر سر به آسمان بلند میکنه خدا یا همه جای اینجا هم بیالی گامی بر نمیدارن امیر المؤمنین میاد پیغمبر کلید بهش دوزخو میدن به دست امیر که قسیم و ناره و الجنه که سنی ها میعتراف دارن شافعی میگه علی یونحب نه جنه قسیم و و الجنه که اونجا بدون امیر پیغمبر وارد نمیشه که البته تو پرانتزینام ارز بکنم امیرالمومنین به پیغمبر ارز میکنند تا فاطمه وارد بهشت نشه ما وارد نمیشم رضا اولین کسی که پا بهش بهشت فاطمه زهره سلام الله علیه هاست البته اینم بگم حالا که مدینه میری بچسبید به زهرا سلام الله ها وقتی فاطمه زهرا میان امیرالمومنین و ممینین او شما وارد نشی وارد نمیشم به دم در بهشت که میرسن میگم خدا یا تا شیعان من به بهشت وارد نکنی من نمیرم خدا به فاطمه زهراو فرماین که میخوای خواد شفاعت کنی شفاعت کن حدیث اینو داره مثل مرقی که دانه ها رو از لابلای بلای جدا میکنه فاطمه سلام الله علیها شیعه هاش رو از بقیه جدا میکنه که اینها رو وارد بهش بکنه پیامبر تو قبا موندن سه روز بعد امیرالمومنین با فاطمه زهرا با فاطمه بنت اسد با اینها رسیدن به اتفاق وارد مدینه شدند این یه نکته است قبا که ان و میخونیم و یه نکته است یک نقطه در مدینه خود مسجد النبی خب مسجد النبی قبر خود پیامبر در اونجاست به احتمال خیلی قوی قبر حضرت زهرا سلام الله در اونجاست و اون آثار تاریخی که ستون توبه و غیره که داره که ان از نزدیک خب مسئله خاصی نیست محله بنی هاشم بود که خراب کردن در همین ارتباط از مسجد النبی بیان جلو و خود قبرستان بقی که در قبرستان بقی قبر چهار امام امام حسن مجتبی امام باقر امام سجاد و امام صادق علیه مسلم و شاید به احتمالی قبل از زهرات و قبرستان بقی باشه که اونجا باید زیارت و هر حال خوند و و بسیاری از بزرگان پسر پیغمبر صفیه و آتیکه دو امه های پیغمبر و ادهی از بزرگان از یاران پیغمبر شهده احد که برخی زخمی شدن اومدن در مدینه و تو مدینه از دنیا رفتن اینا در جای خاصی این در خود قبرستان برقی بیرون مدینه که نزدیکی ها دیگه بعضیش متصل بعدیشان جدا شده دامنه دو احاد قبر حمزه سید و شهده قبر جناب مسعب ابن عمر و اون واقعه تاریخی که در احاد اتفاق افتاده انشالله دیده میشه و قضایه هاشو توجه دارید جنگ خندق که باز یه نقطه در اونجا هست که همه احل سنت همینو نقل کردن خندق وقتی خند... کنده بودن و دشمن وارد شد و امر ابن عبدالبود از خندق فرید و کسی جرات نکرد نزدیک بره و فقط امیر رفتن و پیغمبر فرمودن بر ازل ایمان کل و معشه کله تمام ایمان امروز با تمام شرک مواجه شده و لذا وقتی صدای لا اله الا الله امیرالمؤمنین بلند شد که امر بن عبدود کشته شد ضربت علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین جبرائیل اونجا نداد در داد که پیغمبر به بدايه گفت اونم میبرن نشون میدن اون مکان رو میبینیم اون رشادت های کمیل المؤمنی انجام داده و نمونه های اینجوری کار اینا خیلی جنبه یک جنبه تاریخی خاصی در مدینه که حتما باید بود توجه هم بشه مساله بیت اللحزانه چون سعی زیاد شده مسئله بیت الهزان به صورتی لوس کنن. خود دولت سعودی هم خب این هی داره که محف میکنه. بنده سفر اول حدود 16 سال قبل، 16 سال قبل، یادم میاد اون تپهی که بود در لابلای نحنها یک چیزی هم داشت، همچنین خونه مانندی، اتاقه مانندی که البته خراب کرده بودن. سفرهای برد دیدیم هی جمع کردن، هی جمع کردن کم کم دارن حالت، یک زمین خالی که هیچی آثار نداشته باشه این اتوبانی هم که بیرون بقی کشیدن که باید ردچیم بریم اون ور تو ناخل که قسمت بیت و لحظانه ما این اینور اتوبان رسیدیم بهشون دمپاییش رو در آبط گوزش. من اول فکر کردم دمپایی از پاش در اومده گفتم گفتم هم خوم پا بهرهنه برم سرشان داخته بود پایین خیره خیره فقط زمین رو نگاه میکرد و میرم که من توی اتوبان دست رو گرفتن گفتم،, گفتم ماشین داره میاد خب حالا اون زبان دله دیگه زبانه حال زبانه قال نیست گفت نگاه هم به زمین شاید قطرات و خون فهلوی فاطمه زهرا سلام الله ها که این مسیر رو میرفتن رفتن بیت و لحظان رو برمی کشتن من اینجا مشاهده بکنم رضا حالی داشت رفتی موقعی بود که کاربونا رو موقع نمی بردن خلوت هم بود غروب آفتاب رو هم از کنار گنبد پیغمبر می دیدیم برای ما بیت و زهراست یاداور اون همه اطمام و حجت حضرت زهره دفاع فاطمه زهرا از امیر علیه السلام و یادآور حساسیت دفاع از امامت در فرهنگ تشعیب. اضافه ایتو لحظان و بعد زنده نگه داریم. توجه داشته باشیم. مسئله یه درختی اونجا بود از زهرا می گریه می رفته. زهرات خونه می تونستن گریه کنن. این جنبه های دیگه ده. این ها به صورت خیلی فشرده جنبه تاریخی که کردم، اما جنبه دیگر جنبه مناسک هم که ارز بحث شده به بحث می‌کنید، یه جنبه های اخلاقی حج حالا یه مقداریشون شدیم بحث می‌کنیم، با توجه به روایه ما میدونیم حج واجب تعبودی است نه واجب توصلی واجب تعبودی با واجب توصلی فرق شوشنه برای آیین و خانوم ها در واجب توصلی نیت شرط نیست فقط وصول با اون مقصد کافیس یا اون منظور کافیس. مثلا اگر دست بنده خونی شده نجسه من برای نماز دستم باید پاک باشه تاهر باشه لذا وصول به تهارت کفایت میکنه نیت قربطن الله هم نکنم مثلا خواب باشم. در خواب دستم بیافته توی حوز کری یا آب جاری به گونه ای که نجاست هم از بین بره این نجاست و دست پاک شده من با این دست میتونم دستم آلا پاک شده نمازم بخونم من که قصد غربت نکردم دستم رو شستوشو بدن مثل وضع که نیت میکنم چون واجب توسلی است اما در واجب تعبدی حتما باید نیت غربتن الله باشه نماز تعبدیه شما اگه در نماز نماز میخونم غربتن الالله. نفرمایید نماز کن درست نیست. حالا به جای دو رکت نماز تو ازار رکت بخونید ولی غربتن نباشه حج واجب است یعنی عمل حج باید غربتن الالله باشه نیت خدا باشه خب خود این نیت خدایی و این غربتن به چه صورت؟ در حدیثی از پیغمبر اسلام دیدم که این البته در خطبه عزت و حجت و ودا هست پیغمبر فرمودن یه حج و اقنیه امتی لنزهه و یه حج و اوساطها لتجاره و یه حج و فقراء هم و سمعه یه زمانی میاد اقنیه پولدارای امت من حج میرن برای رفع خستگی تفریه گردش سرگرمی برای نزه این خیلی غمه گیزه در عمر که زیاد دیده شده ما شنیدیم که گفتن خسته ای میخوایم یه دو هفته بریم مکه و مدینه راف خستگی بشه حالا میگیم عمره هست یه جوری بالاخره اما تو حج نعوذ بالله در زم خطور نکنه خب حالا میخوایم بریم ببینیم خانه خدا چجوریه قبر پیغمبر چگونه است اصل وقت خدا باشه حالا نیت رو میخونم از امام صادق علیه السلام چی باشه که میفرمازدونت میخوای حرکت کنی چیکار کن امام صادق علیه السلام فرمودن امت من برای تفریح اوساط امت من طبقه متوسطم برای تجارت میگن جنس اونجا تره بریم یه چیزایی بخریم و بیاریم و بقول یکی از دوستان ما چمدونا رو پر کنیم بریم نه اینکه دل و قلبمون پرش برگردیم و فقرا هم برای ریا و سمعه هم میگن که خب بریم برگردیم به ماماجای آج خانم بگن اگر در ذهن این گذشت این حج نیست برای که حج واجب تعبدیه نماز وقتی میخوام بخونم قصد نمیم باشه که دیگران ببینن و بگن نماز خوبی خوند تو من نماز نخوندم لذا امام علیه السلام به این نکته اشاره فرمودن از امام صادق ازا عرب تل حج وقتی اراده حج داری میخوای مکه بری قصد خانه خدا کردی فجرد غلب کل لاح اززوجل من قبل از مکمن کل شاقله وقتی قصد حج کردی دلت رو از هر چی که میخواد مشغول کنه جردت خالی کن،, مجردش کن دل فقط برای خدا باشه خدای من برای تو دارم میام خب برای خدا دارم میرم باز به چه معنیست یک روایت دیگه این رو توزیمی درس کردم من قدرت نمیجا زیاده چون از روایات دارم میگم یه جرعت میکنم راحتر بگم پیغمبر فرمودن انما فرزت سلات و امره بالحج و التواف و اشعرت المناسک لعقامت ذکر الله از پیامبر فرض شد نماز امر شد به حج و تواف و مناسکی که برای شما معین گشت لعقامت ذکر الله سریح قرآن اقم صلاح لذکری نماز برای ذکر منه حج برای اقامه ذکر الله حالا ذکر چیست و حج برای او اگه نباشه حج نیست از خود به باید میگم فقط کمی توضیح را از کنم. فضالمیه کنفی قلببه کل مزکور لظی اوول مقصول و مبتقا عظمتتا ولا فما فماقیمت ذکر و اگر اینگوونه نباشد یعنی حج برای این منظور انجام نشه. اونی که منظور بود، اونی که اصل بود، اگر دیدی این در شما وجود نداره چه قیمتی داره؟ چه ارزشی داره؟ حج اون اقامت ذکر الله. خب حالا اقامه ذکر الله برای عمل حج وقتی واجب تعبدی شد برمیگرده به نیت. وقتی به نیت آمد ما میدونیم حرکات و اعمال ما به اقتضای چگونگی نیت ما صورت می‌پذیره. ظاهر اعمال ما برمیگرده به اون خصایصی که در درون ما میگذره از کوزه برون تراود هر اونچه در روز حج یک تمرینه لذا نمونه هاش حالا اسم میبرم که خدا حضرت فرمودن یک تمرینه که انسان ببینه واقعا توی مرحله تمرین چقدر توجه به خدا داره و چقدر انگیزه هاش خدایی است که اعمالش خدایی بشه بعد وقتی که از این تمرین خارج شد در طول زندگی اینجوری عمل میکنه یا نه لذا شخصی خدمت امام سجاد علیه السلام رسی که آقا من حج بودم حضرت سوالاتی از ایشون کرده که خیلی عجیبه یکی یکی شروع کردن فالا من طبق اون یه کمی به هم میزنم به جهتی و عرض میکنم نظم حضرت رو فرمودن اون موقعی که تصمیم حج داشتی. فهینا قد تلحج نویت انک قد حلل کل عقد لغیر الله اون موقعی که قصد حج رو کردی آیا نیت کردی هر چی غیر خداس منحل کنی طرف گفت نه فرمون تو حاجی نیستی بیان امام سجاد علیه السلام خب بله ظاهرا بالاخره ما نماز هم داریم دیگه یک نماز الصلاه و عمود و دین معراج المؤمن یه جام داریم ویل و دل وای بر نمازگزاران نماز خنده ولی ویل و دل امام فرمودن اگه قصد حج کردی آیا خودت از غیر خدا واقعا منحل کردی یا نه لذا یکی یکی به مراحلی که می‌رسیم حالا تو عمل حج من بخوام عرض کنم سیر تاریخی جغرافیایی نیست ما اولین کاری که تو سیر حج داریم ورود در میقات از میقات شروع میشه دیگه تکلیف ما اونجا باید اولین قدم ما محرم بشیم خود بودن در میقات یعنی چی؟ خب شما از مدینه که انشاالا مدینه قبلیم داریم میریم از مسجد شجر است. از جای دیگه مالا هر جا باشه یعنی از اینجا به بعد آزاد نیستی لباس لباستو بکن باید محرم میشه پوشش اینطوری باشه باش اینطوری باشه ذکر دین باشه هر زدن اینجوری نگاهت به این کیفیت یعنی چی؟ یعنی اینکه الان تو حرم العلهی در نظر گرفتی آیا فقط حرمعلایی هم اینجا؟ یا در زندگی بی این رشد باید درس این تمرین شروع کنی مثلا عالم حرم الهی است چجوری حرکت بکنی اونجا به من گفتن مثلا لباس دخته نمیتونی بپوشی باید حوله احرام داشته باشی در طول زندگی هم به من گفتن مثلا لباس ابریشم نمیتونی داشته باشی مرد طلا نمیتونی بپوشی یا یا اون چه باید و نباید الهی در کل زندگیست است یه تمرینه اونجا این حساسیت رو من نشون میدم در بقیه مراحل چقدر این حساسیت برای من مدره یا نه حالا این رو با توجه به خود حدیث از امام علیه السلام ارز کنم فهین نزل تل میغاته وقتی رسیدی به میغات حالا پا گذشتی اونجا نویت انکه خلعت صوب و ولبست صوبت تاعه ما وقتی رسیدیم به میغات ها این لباس کندیم گذاشتیم کنار لباس احرام رو پوشیدیم امام سجاد فرمودن نیت کردی که لباس محصیت رو بکنی دور بریزی و لباس تاعت رو بپوشی اونجا ظاهر من است دیگه ظاهر اینه که من لباس دوختر بپوشم بیگناه دیگه مسیت. چشم خدای کندم حالا لباسی چی؟ رضا تعیم شخصیت مدرک تحصیلی عنوان عمر رو امر کنار. همه لذا استهبابش همینه اگر ضرورت نداره عینک که هم وردار مگه چشم ناراحت. حتی المقدور انگشتم از دست جمیزی زینت داشته باشه که حتما حالا که زینتتم نباشین انگشترم در بیاد. حتی مقور اگه احتیاج بین ساعت ری ساعتم باز کن همه رو بریس دور خدا فقط به سوی دارم میام لباس برام معنی نداره خونه برام معنی نداره. عجیب اثر وضعییت میبخشید من شاهد دارم وا توی مجلسم هستم و دیگرانم دیدم. بچه سه ساله چار ساله تو ایران داشته شدیدن وابسته وقتی از اینجا مخواسته حرکت کنه تا تو فرودگاه یه شماره دیگه بگیریم بچه چکار میکنه وارد سرزمین مدینه و مکه که میشه اصلا بچه امرادشون عمل حج تموم میشه دوباره مخواد برگرده دوباره دلشوری شروع میشه این اثر وضعی اونجاست اما اگر این اثر وضعی در ضمن عمل حج یه جوری بخوایم. به برکت ولایت این نور در دل تابیده بشه که در طول زندگی اینجوری بشیم خدایا اون لباسی که تو نمیپذیری کندی من داختیم دور و اون لباسی که تو میخوای مپوشیم می تو اینجا این لباسی میخوای لباس احرام من پوشیدم اما در طول زندگی خودم رو محرم ببینم لباسی که تو میپسندی بپوشم لباسی که خدا میپسنده چیه؟ امام عدیه السلام فرمود که خلع کنی سو لباس کن. دور و لباس صَوْبَتْ تَاعَهْ و اون لباس تاعت رو اطاعت و متیک شدن همونطوری که اونجا تو زواهر امرم پیداست در طول زندگی این حالت این تمرین بسیار زیبایی میتونه برای ما باشه که من تو این محدود دارم رعایت میکنم در کل زندگی نسبت به این محدوده چقدر داشته باشم خب پس یک میغا این محرم شدن حساسیت به این معنا اصلا کل عالم میغاد در نظر بگیریم در طول زندگی ما و در طول زندگی خودمونو محرم اصاب کنیم این چقدر حساسیت تو زندگی ایجاد میکنه ما ماه رمزان یک ماه تمرین سریح خود قرآن که کتب علیکم و سیا کما کتب علل لذین من قبل کن لعلکن یکی از اسرارش یکی از پباعدش روزه بگیرید باشه که با تقوا بشید یعنی وقتی این تمرینی که انسان در طول ماهرم از آن میکنه دلم میخواد نمیخورم دلم میخواد دست نمیزنم دلم میخواد نمی نوشم این دلم میخواد نمیکنم دلم میخواد نمی کنم ادامه بدیم توا دی به قع دلم میخواد ولی خدا نمیخواد خدا رو بر خودم ترجیح میدم تمرین هرجم یک تمبرین است در زندگی انسان لزینایی چقدر ما دستور داریم حج رو مکرر انجام بدید واجهه گرفتف است. این نکته رو من امثال توجه کردم در آداب ماه رمضان بیش از هر چیزی که شمارشش رو امسال من توجه کردم یه چیزی بالغ بر هزاره در دعاهای سهر، روزانه، شبه های قدر موارد تکراری که داری اینا رو که حساب کردم در طول ماه رمضان اینو بخونید اینو بخونید دیدم بیش از هزار مرتبه درخواست زیارت حج فی آمی آزابافی کل آم چرا؟ چرا اینقدر نسبت به عمل حج و تکرارش مخصوصا سفارش شده تا میتونی البته با شرایط اونم باید توجه داشت یه وقت خدای نکرده جنبه تفریحی جنبه فخر فروشی یا جنبه از یک کار مهمتر افتادن نباشه که اونا جنبه‌ای خاصی داره این تمرین و ممارست برای ایجاد عبودیت و بندگی در مسیر خدا این نیات این موهره و اولین واجب بعد از این طلبیه ذکر لبیک اللهم لک لبیک این ذکر رو می‌خونن در درگاه خدایی در حدیث داریم امام صادق علیه السلام محرم شدن اماممون برای ما خودشون که حسابشون جداست لب رو فرمودن یک رو نمی‌فرمودن مکس می‌کردن حالا یه نفری به قول خودش به امام یاد بده آقا اگه لبیک نفر من درست نیست فرمودن چطور لبیک بگم که اگر ندای بیاد لا لبیک و لا سعدی لبیک خدایا چشم شنیدم اجابت کردم اللهم لبع لا شریک لک لبع تو شریک نداری فقط داری تو بله بگم. من به کس دیگه بله نمیگم بله رو به تو میگم اینجا امام علیه السلام فرمودن امام سجاد فهین لبیت ان نکن نفقت الله سبحانه و به کل طاعه وقتی که گفتین لبیک نیت کردی که بیانت و ذکرت این باشه که خدایا فقط برای اطاعت تو و در مسیر تو من این بونه باشم این هست خب عرض کردم یه وقت جنبه های ظاهری این لعقامت ذکر الله گفتیم ذکر خدا ذکر خدا عقم صلاح لذکری ولا ذکر الله اکبر ذکر خدا بزرگتر که بعد از مسئله باز اقامه نماز در قرآن میاد یعنی یه وقت نماز فقط این دولاراست شدنه خب این انجام میشه یک وقت نماز بیاد خدا افتادنه اگر بیاد خدا افتادن چگونه میشه؟ اجازه بدید یه هاشیه اینجا برم اجازه میخوام بین حدیث برای توضیح حدیث از کنم مقید بودن تو محدوده حدیث باشه بحث ما انایت میکنید انسان به اختزای قرق شدن در هر عالم کشش و گرایش و حرکت به اختزای این آلم دار مثلا فرض بفرمایید یه نوجوان این ده ساله ایش ده ساله ده ساله, ده ساله،, ده ساله،, ده ساله،, ده ساله، تمام فکرش، ذکرش، زندگیش پول باشه، مقام باشه، اتومبیل باشه، مدل فرشی باشه همش تو دنیای ذهنش این میگذره شما حالا بیاد بشینید با این نوجوان صحبت از سید الالله بکنید او اگه اون لحظه هم که شما بهش میگی دهندره میکنه خسته میشه، خمیازه میکشه و چی دارید میگید شما؟ تمام کوششش توانوادیه حالا کسی تو تمام ذکر و فکرش خدا الهی شما برای اون یه مقداری از فعالیت‌های مثلا مالی حرف بزنید دهن در می کنه هم یازه می دشه. یه استادی ما داشتیم یه بندی خدایی هم درس پیشیشون می اومد کارمند بانک بهشون مفرو دادن که اون قسمت که پول می گیرن و پول میدن همیشون وای نیست یا گاهی چرت و بس قچی رو گفت دل میشه گاو صندوق تو همش پول پول می گیره پول میده پول میگیره پول میده خیلی دل. همش اونش با پول دیگه یه مقدار اونستون با یه چیز دیگه میگه برای اقامه ذکر اللهه یعنی دل در عمل حج بگه خدا به سوی تو اومدم و زمینهای ظاهریش هم نشون میده شما مشرف که میشید انسان تحینا رو دور دیخته این لباس، این ظاهر، این خونه زن، بچه، شوهر، دیگران دو تا پارچه سفید یا یکی پارچه سفید خانما به اون صورت آقایون به اون صورت و وقت میاد تو صحرای عرفات میاد تو صحرای مشکر میاد تو صحرای منا واقعا مثل که یه شمای از قیامت رو انسان داره احساس می‌کنه که غیر از خدا هیچ لذا اون طریادهاش یا لبیک اللهم لبیک حرکت چیه به سوی اون مقاصدی که خدا معین کرده حواسا جنب باشه اون چیزی که او میخواد در اون جهت خب این یک تکه‌ای میشه از اینکه راستی که انسان در کل عمر خودشو محرم بدانه و در در حال لبیک گفتن زندگی شما چجوری میشه چقدر حواست زیاد در این عمل حج یه چیز اشتباهی انجام نده حالا گای به اقتضای مثلا این تمرین‌های جریمه مادی اگه شروع کرده گوسفند باد قربانی کنی ها. و سخت باد پول بده ماخر این سختی رو اون وقت می‌بره توی وادی دیگه سخت از خدا جدا میشن از اولیای خدا جدا میشن مثلا رو به این وادی اگه من بگیرم جمع ما رو دست به جمع بردن بهش اونجا کلاس امیل المؤمنین همه شما رو فرمودن کردن بفرمایید پای درس اسطغفارین آقا انرمون خودش ما درس بگیرید بهشت این بنده میان وارد کلاس درس تعیر بشنم دم در میگم چ اوور آجش کار کنم. اونجا قضاهای خوشمزه هست مذس بشین چای و نبل و شکلات و بستنی هم هست. من اونجا که بفهمم میذارم تو سرم. چای چیه؟ شکلات چیه؟ من درس سا می مو میخواستم اما لیاقت نداشتم. من این فهم و نداشتم اون پای در سمییر مومین راه بدن چیزی که شما مثلا گاهی جلسات درسی که میریید وچه رو سرگر میکنید با با بازی که مانع کار شما نشد. اگر در طول زندگی این بینش برای من بیاد زندگی رو که حج ببینم سیره ال و خودم و محرم ببینم که اون بی ها من ممکنه بهشتم برم ولی من از اون جاان از, از سطوه بهشت چقدر جالبه در زیل های شرریفال آ آدم بیاد بگم تو همه دارن. سنی می هم این نوشته اسم طرفا یادم بیاد در میکنم یکی از یاران پیغمبر بر معرفتم تو توم خیلی پیم رو دوست میدار یه صبح زودی اومد پیششه بیم بر پیامبر هم دلش اینه یا رسول دیشب به این فکر رو رفتم سخت منو آزرده چیه دیشب فکر کردم که تو دنیا هدفو بخویم میایم در خونه شما باز شما رو میبینیم بالاخره مرگ هم برای من هستم برای شما از این دنیا میرید من اگه بهشتی ام باشم تو بهشت منو به شما که نرسیدن که شما بهش کجایی من کجام من واقعا دلم براتون تل می‌شه از این قصد دیشب تا صبح نخوابیدم راستنم میگفتا چون پیغمبرو دوست داشت حدیثم نشون میده آیه نازل شد. کلا آیه یادم بیاد میخونم. آیه نازل شد که اونایی که با صحابه رسول صدیقین و مؤمنین واقعی با پیغمبرم فردا قیامت، پیغام فربود نگران نباشید، شما اینگونه باشید اونجا با ماید. این نفس راحت کشیدن دیگه از مریم نمی‌ترسند. خب ما اگه در طول زندگی این رو حساب کنیم همینطوری که در عمل حج یک کمی کوتاهی کنیم، یه جریمه هایی داره. دنیا ماده است، جریمهش مادیه. اما سیر الالله معانی ارزنده ایست. جریمش همون معانی ارزنده است. من اینجا لغزیدم باید جریمه مادی بدم. اگه در طول احرام زندگی لغزیدم جریمه محرومیت از اولیای الهی دارم. دوست کجا و تو کجا ای دقل. نور ازل را چه به بلهم ازل. قلعه که کل انهام. بله ازل. زد جدا می افتن. و اینجا حواسم جمعه. حواسم جمعه. یک کمی تو زندگی حواسم جمع نکنم منو از کلاس در امیر المومنین محروم کنم و این تمرین میشه خیلی درس زیبایی میتونه حج باشه لذا در کتاب حق و یقین فی معرفت و حسول الدین مرحومش رو برومده حدیثم مخصل یکی دوتا نیست که امیر دم مرگ هر کسی با سرش حاضر میشه وقتی از همه جا امیدش قطع شد چشم دوزه به امیر در حال جون داده اگه مستحق عنایت باشه حضرت لبخندی میزنه مروت نباشه اگه مستحق عنایت نباشه حضرت سرش رو برمیگردونه این میفهمه که دیگه بیچاره شد. خب اگر این جریمه رو ما در نظر بگیریم من حالا که محرم شدم لب بیک دارم میگم خدایا اومدم به سوی تو به چه صورت اومدم اون چه گفتی نکن نمیکنم اگه اشتباه کردم جریمه میشمو در طول زندگی خدایا تو گفتی یا ایتو انفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه تن الله و ناله اگر یه مقدار سستی کنم اون جریمه ها وقت این یک تمرینی میشه برای اون حساسیت بیشتر نشون دادن لذا امام علیه السلام فرمودن اگر تو میقات رسیدی خودت تو محظر خدا که داری میبینی محرم میشی حساب کردی که همه چیز دورویختی غیر از خدا لبه حساب کردی واقعا به خدا به گفتی یا نه یا بله نگفتی این فقط لفظیه خب حالا گفتیم اومدیم به سمت مکه طواف اولین کار ماست میگن طواف رو باید یا دستمون رو بزنیم به حجر حجرالاسود که اگر این بیت باشه همونجوری که عرض کردم اینجا در بیته این ركن حجرالاسود که از اینجا به مواظات این تواف شروع میشه یا باید دست بزنیم به حجر که اول دیگه امکانش نیست تو این جمعیت فقه ها فتوا دادن از دور دستی اشاره کنید به حجر که ما داریم تواف منو شروع میکنیم داریم میگردیم در احادیث زیاد داریم در همین جمله امام سجاد علیه السلام هم داریم که حجر و به منزله دست خدا در زمینه تشبیه همونطوری که شما با کسی دست برادری دست بیعت دست اتحاد میدید میگید دست و دست شما گذاشتم این دست واقعا دست پیانت نکنیم میگید نه دست دادم. دست که به حجر میزنید یا دست از دور اشاره میکنید به حجر خدا یا با تو عهد بستم خدای اومدم به سراغ تو خب حالا اگه با خدا عهد بستی داری میگردی دور خانه خدا خانه خدا کهبه نشان است که ره گم نشود خدا که مکان نداره کنایه از مظهر انایت فروردگار و خدایی خدایا با تو عهد بستم حالا با تو عهد بستی میکنی دور تو میگردم قید تو برام مطرح نیست اما دورتونی می کردم. هجر اسمایل داخل در دور مدافع کردم. یعنی تو جدا از دور اولیایتو نیست. دور اولیایتو جدا از تو نیست. زه علی شناختم من به خدا قسم خدا را. شهریات چه زیبا میگه دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. زه علی شناختم من به خدا قسم خدا را. لذا دست دادم تو دست خدا. خب حالا که دست دادم واقعا وای نیستم یا دارم خیانت میکنم. لذا اینجا امام علیه السلام فرمودن خیلی عجیب این ای که داره فصاح سیحتم کادی و فارق دنیا سمقال آه آه من صافه حجر الاسفد فقط صافه الله تعالی حضرت و خیبی این نکته رسیدن فرمودن سیحه کشیدن ناله زدن وای اون کسی که دست به عجر میزنه دالا اشاره میکنه از دور ایم که با خدا داره دست میده آقا من با شما تعهد پیمان میبندم خلاف میکنم شما میگید همین بود شد، مروبت همین بود؟ با من اینجوری عمل کردی؟ هرچه من برای شما احترام بیشتر قائل باشم حساسیت بیشتر نسبت به این پیوند قائل بشم نسبت به شکستن این پیوند و تعهدم بیشتر شرمندم اون وقت خدای جهان به او میگم حالا در طول زندگی که بنا بوده حالا اومدم تو سفر حج این تمرینی که میخوام برای ما آغاز بکنم ان که حالت دیگه ای پیدا کنم بعد از حج هاجی شدن حج یعنی قصد اصلا حج یعنی قصد ولله علمناس حج ال بیت قصد بیت میکنن هاجی شدم یک قصدی کردم چه قصد؟ قصد خدا پیمان با خدا پیمان با خدا دست دادید به خدا امام علیه السلام می‌فرماد وای وای اگر کسی توجه پیدا بکنه که دست تو دست خدا گذاشته این در واقع با خدا داره بیعت می‌کنه خب کسی که خودش رو بیعت کننده با خدا ببینه باز یه تشبیه اجازه بدید اینجا عرض می‌کنم شما یه شخصیت معنوی برجسته حالا برای ما شیعه مثال به امام زمان علیه السلام می‌زنیم از باب وصف ایش وصف ایش دیگه وصف کیبی نداره نه کسی چه بکنه ادعا بی سادگیان نیست تا یه وقت مغازه نشه بنابر خدا حالا فرض کنید به یه صورتی به جمع ما گفتند فردا سر ساعت ده صبح در فلان جا امام زمان تقرم از میکنه وسبول عیش نسول عیش کسی جرئت نمیکنه بزنه و متاسفانه حق بازیای هم را افتاده اگر بگن فردا سر ساعت ده صبح در فلان مکان امام زمان علیه السلام تشبران اجازه ورود به شما ها دادن برید خدمت عزرا شما امشب تا درک چاله دارید؟ میتونید بخوابید امشب واقعا به میزان علاقه به میزان عشق به میزان ارتباط با امام زمان علیه السلام که کسی داره دیوونه نمیفهمه خدایا امشب چرا مسی یک سال داره میگذره چرا امشب صبح نمیشه ممکن ای بیاد بیرون ای برگرده یا آسمان نگاه کنه که صبح میشه که ده میشه چرا این ساعت کن حرکت میکنه و چه بسا اصلا قابل توجیه از شدت ذوق و این طبیعیه دیگه خب حالا خدا گفته بیاد دست با حجر میزنی در واقع ملاقات با من داری می‌کنی به معنا امام وقتی میفرماد بی اینجا رسید صحیح و فرمود این ملاقات با هجر مثل ملاقات با خدا الا یا بیعت با هجر مثل بیعت با خداست انسان توجه به معنا پیدا کنه که دیگه توی وادی دیگه بناس وارد بشه و یه حالت دیگه‌ای طب خب طوافو شروع میکنه گشتن شدت علاقه و شدت فداکاری دورگشتن دیگه مثلا مادران که خیلی دیگه نسبت به بچه ها گذشت دارند و آتفه دارن میگه دورت بگردن این دیگه شدته یا مثلا گاهی دیده شده میگن یه مادر از بس بچه رو دوست داشته بچه بیمار بوده بچه رو گذاشته دورش گشته یعنی درده او به جون من بیفته خدایا ما دورت تو میگردی ما چیز دیگه نمیخوایم هر کس چیزی میخواد ما تو رو میخوایم تو اولیای الهی هم. مظهر خدان خواستن اولیای الهی او س... رفتن باید در ما این حج حاجی شدن این قصد رو ایجاد کنه خدا یا غیرتون برای ما جلوه نداره خب خیلی چیزا غیر خدا تو زندگی برای ما جلوه داره پول جلوه داره مقام جلوه داره موقعیت زندگی جلوه داره بشر چیزی که براش ارزشو جلوه داره دنبالش میره چیزی که جلوه نداش دنبالش نمیره حج یک تمرین است که موحد غیر خدا براش جلوه نکنه اون چی نیست خداست لذا یک نمونه امام حسین علیه السلام <تصفيق> یک نمونه خود از ابراهیم حضرت ابراهیم خدا برایش جلوه میکنه خب علاقه شما نوعا دیگه پدرید یا مادر توجه دارید علاقه پدر و مادر و فرزند چقدره اونم پدر و مادری که یه وقت در دوران کوهنسالی بچه دار بشن مثل از که پیرمه شده بود خدا او بو اولاد دار اونم اولادی مثل اسمایی یک پسر متدین لایقه از اینجا لیاغتش مع وقتی دست پسر رو گرفت آورد تو اون صحرای منا که قربانی کنه پسر رو پسر جان خدا دستور داده که راتو رو ذبح رو کنم به در امر خداست هر چیزی تا تاخیر نیوفته هم که پسریه دیگه و این نشون میدیم که پسری حالا خدا میگه ابراهیم پسر تو قربانی کن چراش چون من دور خدا میگردم دیگه دور خودم که نمیگردم یه وقت خودمم فقط پسرمه خدا حالا نمیشه مثلا دوستش دارم اینا هیچ مطرح نیست. اضافه پسر رو میگذاره کارد رو میگذاره کارد که نمیگره نگران میشه میگه پسر رو از اون رو برگردونم از پشت گردن که چشمم به چشم پسر که میفته نکنه یه وقت عاطفه پدری تحریک بشه امر خدا رو زیر پا بگذارم کار که نمیگوره نگران میشه کار میزنه زمین که کار به رو خدا صدا در میاد یعمر نیبل می جلیل ینهانی ابراهیم خلیل من رو عمر کنه خدای جلیل میگه نکن این دوره خدا میگرده ابراهیم حاجیه خدا تو گفتی تو چشم و از او حاجی تر امام حسین علیه السلام روز عاشورا از یک برم حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی میاد میدان اشبه اون ناز خلقن و خلقن به رسول الله خی این مهمه خلقن عشبه هناز خلقن و خلقن به رسول الله خلق و خلق شبیه ترینه به رسول خداست یک همچه جوانه متدینه با رسته پیغمبر نمایی امام حسین لبخند داره بله آتفه پدری جریه میشه اما تسلیم امر خدا به گونه است که وقتی علی اکبر برمیگرده از میدان پدر اپش گونه بر من غلبه کرده حضرت زبان به دهان پسر میگذاره که انشالله به زودی از جد رسول خدا سیراب میشی نمیگه وای پسرم چقدر تشنه است میگه سیراب میشی پارش مطرح نیست وقتی علی اصغر رو میارن تو بغلش یک کودک خردسال یک دنیا احساس و عاطفه ممکنه تحریک بشه وقتی خونش به زمین ریخته میشه مشتی از خونو برمی داره به آسمان میریزه خدایا این قربانی رام قبول کن این قربانی کوچیکی قبول کن یعنی من تسلیمم تواف باید اینو به من نشون بده که مادرم خواهرم واقعا دور خانه خدا چقدر خدا و امر و نهی خدا بعد از برگشت از مکه برات مطره نمیگم نعوز بالله خلاف شرع دزدی شراب خوردن نه در این حال فرض کنید شما عروسید و مادر شوهر خوهر و زن برادر چقدر روابطتون بر اساس اونچه که خداست خدا میخواد هست چقدر روابط بر اساس اون چی که دلتون میخواد هست اگه اون چیزی که بر اساس دلت میخواد انجام دادی واقعا تواف خانه خدا کردی اول ظاهرا بعد لذات تواف دور خانه خدا باید این انگیزه رو در ما ایجاد کنه اون ازکاری کاری که دارن وقت نیست وگرنه اونا رو مالا حالا میآوریم نمونه‌هاشو مستحب طواف شوت اولش بکنید شوت دومش بکنید شوت سومش بکنید به خود اون اذکار هم دقت کنید چی داره مطرح میشه السلام عليكم ورحمة